پیراهن زرد رنگ و زافرانی برای مردان جایز است خیر جایز نیست لباس بواسطه پیراهن زرد رنگ زافرانی برای مردان جایز نیست حتی اطرهایی که ما زافران زعفران رنگه مرد نه به لباسی بزنه تا کنه زرد بشه اما خیلی اندک بود که دیده نمیشون نه اما خود لباس زافرانی ممنوع هست داخل احادیث صحیح ممنوع هست و اینو من کردن به اتفاق اکثر علم، جمهور علماه اینو نجائز میدانند لباز آفرانی حالا باید تحقیقی که دانشمندان غربی انجام داده ان چون در بعض کشورها خود ویسل خودکشی خیلی زیاده مثلا در سویز خودکشی خیلی زیاده در امریکا خودکشی خیلی زیاده یه تحقیق تقریبا 7-8 حالا ما شنیدن تحقیق انجام دادن چرا خودکشی میکنن وقت نگاه کردن اکثر افرادی که به این خودکشی مبتلا بودن کسانی بودن که اون زیر پیراهنی اونها زرد رنگ بوده اکثر اونها این چیزو داشتن اون چیزی در احادیث میاد این لباسو استفاده نکن اون رنگو استفاده نکن خاطر اثرات منفی هستن که بر وجود و روان انسان می گزارن. حالا اینو کم توضیح بدم اول بگم لباس سیاه جایزه حالا این کلمه پوشن لباس یا لباس سیاه جایز استفاده کردن شرطش این است که ایام عزاداری چون مادر اهل سنت عزاداری ندارن اول پدر موافات ما بکنه مادر وفات بکنه بچه وفات بکنه و یا نبی کریم هم روز وفات واسه ما عزاداری نداره وقتی ندارین در ایان ازاداری پوشدن لباس سیاه در نزده ما هست جایز نیست اما در حالت عمومی لباس لباسیه جایزه اما اینکه شریعت میگه این لباس ها رو نپوش تنه لباس رو ممنوع کرده شریعت یک لباس زافرانی ممنوع از رنگ زافران باشه خود لباس باشه یا رنگ کرده باشه یا عطر زده باشید دو لباس عبری شر ممنوع هست سه لباس نازو که عورت پوشیدنش ممنوع هست و تا لباس بسیار چست و به اصطلاح اندامی اینها هم اشکال دارن که اندام انسان دیگه در کامل در عورت قرار نمیگیره ما در کسانی بخاطر مجبوری خود مجبوری کاری شغلی بپوشه دیگه برای اون جواز هست حالا چرا اسلام میگی اینها رو نپوشید چون که این نوشیدها بر وجود انسان اثرات منفی میگذارند حالا مثال میزنم بعد توضیح میدم مثلا نگاه کنید حالا مثلا در مجلس شما هر نوع لباس هست سفید هست هم سیام هست و کدر هم از خاکی هست و هر نوع لباس جا هست و ماشاد الجه هست دو نفر از جه بیرون کین بگی بیرون روی سیمان بشینید اون که لباس کدر یا خاکستور داره بدون کوچکترین تعمل میشینه اما اون که لباس روشن یا سفید داره او ایک تعمل میکنه نگاه میکنه زیر خاکستری ن یلا اگر زیاد هم دیگه جذبگی بشه مردم یا خجالت دیگه اما با یک فشار روحی بشی هر جا بشی لباس صفی زیر کار خود جمع میکنه میکنه لباس جمع میکنه جای پاکی بشی زیر کا کا تن جای سایه میکنه از این خاکا فاصله بگیره خود همین لباس الاوک لباس همین آغا لباس بیرون کو لباس ته یا لباس خاکستری فورا عوض میشه و فورا میشینه. این چرا این عوض شد این تاثیر رو بر روی این همین لباس آورد. همین لباس اون زریف و طرب کرد و همین لباس اینو بسیار دیگه ا تبیع کرد. این تاثیر خود لباس بعضی خیلی بسیار ظریف میشه و بعضی خیلی از توجهی نمیکنن. نو لباس علاشو با لباس کار باشی. هر جا هم بری دیگه اینجا خردید اونجا خوردی. پرواهی نیست چرا میدون لباس نو لباس خودت کسیف میشی زیاد توجه نمیکنه یا یا با لباس کار باشی بخای گوسپاندی بکشید توجه نیست حتی شد شد اما با لباس تفین واسه فرنجام میکنید این تأثیر لباس لباسه خود لباس رنگ بر شما تاثیر و تغییر شما رو داره متحول میکنه به خاطر این نشریه اسلامی از خیلی چیزها پوشاک من کرده ولی در اسلام من شده یک بد پوستی پوست درغ نشینید بر پوست بابر نشینید و پوستهاش دررنده نشینید چرا حالت دررنده در رنده وجود شما می آورند حالت دررندگی بر شما زیاد آورن؟ می آورند همه چیزها برای انسان تاثیر می بزارند مثلا در حدیث فرمون کسانی که چوبان گزفندن خیلی رحیم القلبن غقیق القلبن قلبا بسیار می هربان بسیار دیگه انسان های متوازه هم اونهایی که شطرچرانن سخت خوه تون مثل شطر میشه شده سخت توش است در صحراها به تحمل داره همون اوصاف شده در وجودی منتقل میشن حالا این است که خداوند متعال میفرما میفرماست که و کونوا مع الصادقین صالحین صادقین هم مجلس باشید از اونها اثرات مثبت میبینید تاثیرات خوب میبینید در مجالس نیکان میشینید نیک میشید روحیات شما خوب روحتان شفاف میشن اما اهل فساد همون روحی بر انسانها تاثیر می گذارد. پس این است که خود لباس و اسلام خاطرین نعمن کرده. تو اثرات منفی هستم.